بسم الله الرحمن الرحیم خیرا برکات بر تشکیله ما فرمودند اونایی که نایمدن هر روز بعدن میان اونایی که هستن اما در مدینه نیستن، هر کجا هستن اونایی که مراعات تقوا رو میکنن امن و امن و صالحات دارن اونها به من نزدیک و اونایی که ندارن از من فاصله شون زیاد اولو کنار من نشسته باشن خوب بودن افراد منافق کنار پیغمبر اکرم سایه به سایه ایشون راه میرفتن زندگی زیدیگی میکردن اما چون تقوی نداشتن فاصلهشون از پیغمبر اکرم خیلی فرامان رو زیاد بود بعض یا اصلا پیغمبر اکرم رو ندیدن اویس قراری منزلش رو در قبیلی قرار زندگی میکرد مادری داشت از مادر لیوز اجازه گرفت یاد به مدیه تجیبه پیغمبر اکرم رو زیارت کنه مادر گفت شب باید اینجا باشی تنها بود ترسید. وقتی کلمی بهشتاد این آمد مجنون و اعتقادی پیغمبر اکرم رفتار مسافرت در مدیه تشکیل ندادن از یه مرا موزوف بود تبر فرمان مادر برگردی زیرا پیغمبر اکرم اونندگی برد یعنی تقوا را کرد این هم من در تاریخ هست وقتی که آمدن گفتن که کسی اومده اینجا این نیعزد و نفس الرحمن و این یمن یه انسان با تقوی انسان با صداقش آمده اینجا یه چیزی به جا کداشته و رفتی به من احساس می‌کنم که یه چیزی آدم می آمد اینجا نه فیقه من اکرام و چون گفته بود باید برگردی اتحاد فرمان خدا رو کرد پیغمبر اکرم گمشی بوقیت رو برایش اعلان و اظهار کرد. برابرین لازم نیست در مدینه باشه امساعت هر کجا زندگی میکنه واجب خدا رو انجام داد محرم خدا رو ترک کرد به خدا رو از نیکید و پیغمبر اکرم رو از و همه که حضرات مقسومین و خدا نزدیکی. خدا رو از نیکید. امیر و مومنین در لحظه البلاغ که مطیع فرمان خدا باشه ولو با پیغمبر اکرم نسبت و نسبی نداشته باشه میوانه محض اما مطیع فرمان خدا باشه پیغمبر اکرم نزدیک و دوست اوست بعد فرودن کسی که محضیت فرمان خدا رو بکنه این دشمن پیغمبر اکرمه ولو نسبت با اون داشته باشه امیدوارین خدای متعال اول به بنده بعد هم به شما انشاءالله بعد به هر کسی کی که میخواد در راه بندگی حرکت کنه و پیش بره کمکش کنه اینشالا مددهای قیبی و غیر قیبیش رو نسالش کنه و کمکش کنه زمین نخوره همسنا خط بندگی رو پیش بگیره و به اون نهایت و قایتهای که هدای متعال داده در این راه برسه و موفق باشه نسال اروای تقیبه همه انبیاء ازام خاص خاتم انبیاء به هزرات محسومین و شهدهایی که خون دادند و حفظ کردن این بر ما به امام شهده سلوات خطف کنید